یه سری مثال رو خدمتون ارز میکنم برای فهم امیختر موضوع انکرینگ تکنیک انکرینگ یا شرطی سازی که در هیبنوتیزم خیلی میتونه کاربرد داشته باشه اگه بخواییم یه مروری داشته باشیم توی انکرینگ شما میایید یه فرد رو در واقع شرطیش میکنید به یک صدای خاص به یک حالت, یه حالت نگاه خاص باشه میتونه یه آهنگ باشه هر چیزی میتونه باشه و در واقع یه وضعیت درونی خاص رو ربط میدید و مرتبط میکنید تو ذهن اون فرد به یه صدا یه چیزی که یعنی ماشه توفنگ میمونه شما تا شلیک میکنی تا اون رو تا اون صدای آهنگ خاص میاد مثلا طرف یه حالت و حسوال خاصی میگیره و اگه میخواد بدونید که قدرت این چقدره خیلی هاشه الان میشنم میگن که خب این حالا اونوقع قدرت نداریم اگه به چی کار اگه میخوایید واقعا بدونید که قدرت این چقدر هست میتونید یه مراجعه داشته باشید به کل این کلیپ هایی که در روی حیوانات هست یه و مثلا تربیت میکنن که مثلا رو دوتا پاش را بره نمیدونم حرکات عجیب غریب و نمایشی رو به نمایش بذاره یا حتا دلفین‌ها رو میان شرطی می‌کنن چیزایی بهشون یاد میدن خوب نگاه کنید چه کارهایی می‌کنن این حیوانات و در واقع تمام این آموزش‌ها بنیانش دقیقا در همین شرطی سازی هست یعنی با شرطی سازی اون حیوان یا اون موجود و زنده در واقع چیزی رو یاد می‌گیره و خیلی وسعت داره یه جستجو بکنید شاید هم قبلاً دیده باشید می‌بینید که چقدر می‌تونه قدرتمند باشه و در واقع کارهایی که از انسان ها سر میزنه کارهایی که انسان ها می تصمیماتی که می گیرند به استیت درنیشون، وضعیت درنیشون و شرط سازی این فرصت رو به شما میده که استیت درنی اون رو خودتون رقم بزنید یا اگه در مورد خودتون اگه میخواید خودتون جور دیگه بشید تصمیمات دیگه بگیرید انگیزتون بیشتر باشه با شرط سازی دقیقا میتونید. همین کار رو بکنید که شرطی بشید به یا آهنگ خاص که به شما حس هماسی میده حس حرکت میده یا هر چیز دیگه ای مثلا ممکنه یک فرد رو یا خودتون رو به آهنگ و صدا شرطی کنید یا آهنگ یا صدای خاص رو پخش کنید در زمانهایی که توی اون استیت خیلی خاص و شدید هستید خودمونیش همون جوگیر شدن زمانهایی که مثلا در ورزش میکنید میتونید یه آهنگ خاص بذارید و بعد هر بار که اون آهنگ رو بشنوید بعد چند بار میبینید که حالا دلتون میخواد ورزش کنید و نمیدونید چرا الکسینه که در واقع شرطی شدید یا یعنی اینکه ممکن شما با یه بوی خاصی شرطی شده باشید مثلا یه سریا به بوی قهوه ممکنه شرطی شده باشن که همراه باش سیگار بکشن خیلی از افرادی که احتیاط‌های خاصی دارن یا معبردی خاصی رو تجربه می‌کنن دقیقا مشکلشون اینه که شرطی شدن و در واقع اون شرطی شدن باعث میشه که مثلا وقتی یه قهوه می‌بینن چایی می‌بینن نمیدونم شروع کنن به سیگار کشیدن چیزهای شبیه این ممکنه شما به یک تصویر ذهنی خاص شرطی شده باشید کسی که فوبیا دارن ترس شدید دارن از ارتفاع از یه موجودی مثلا کابوت یا هر چیزی تصویرهای ذهنی خاصی رو دارن که به شرطی شدن تا اون تصویر میاد حس شاید ترس رو تجربه می کنند. ممکنه شما با حالت چهرهتون بیایید طرف مقابل رو شرطی کنید. مثلا از دعوت کنیم این رو توی مکالمات روزمارستون دقت کنید. یه سری هستن که وقتی چیز جالب میگن ابروشونو ابروشون رو بالا میبرن و بعد از یه مدت طرف مقابل و شنونده اصلا شرطی میشه که با بالا رفتن ابروی طرف مقابل به سرعت اون احساس تجربه و اون احساس خاص که میتونه هر چیزی باشه هر چیزی باشه در واقع در اونها زنده میشه ممکنه یه فردی به نوع خاصی از لمس شرطی بشه مثلا شما هر بار که طرف مقابل رو میخندونید ممکنه یه دستی هم به پشتش بزنید بعد چند بار میبینید که دقیقا طرف مقابل شرطی شده ممکنه به یه شرطی بشید ممکنه به سکوت شرطی بشید این هم خیلی جالبه که ممکنه یه زمانهای شما طرف مقابلتون رو یا خودتون رو به سکوت شر... شرطی کنید یه سری سکوت میکنن با این انرژی که مثلا انگار طرف مقابل یه اشتباهی کرده و بعد, بعد یه مدتی این اصلا یه قانون میشه انگار و در واقع طرف مقابل مثلا رفتارهاشو اصلاح میکنه تغییر میشه چیز شبیه این در هر حال به شما میخوام بگم که خیلی وسیع هست استفاده هایی که میتونید از شرطی سازی بکن یه ارتباط عادی اگه درخواستی دارید میتونید قبلش فرد مقالب رو شرطی کنید یا خودتون رو میتونید شرطی کنید قبل از اینکه که بخواید یه کاری انجام بدید که انگیزه بگیرید که به اون هدف که دارید برسید و نکات مهمش یکی زمان بندیه من میخوام تاکید کنم روی نکات مهم یکی اینکه زمان بندی خیلی مهمه مثلا اگه شما میخواید در واقع طرف ماقاضی رو شرطی کنید یا یه حیوونی رو حتی شرطی کنید برای اینکه وقتی سوت زدید مثلا بیاد شما باید اول از همه زمان بندیتون دقیق بشه یعنی به محض اون صدای سوت مثلا اون غذا رو بهش بدید که اون حالت گرسنگی ایجاد بشه بذارید یه ذره عمیق‌تر حرف بزنم مهم این هست که اون استیت خاص که درون اون حیوان یا درون اون فرد ایجاد میشه مثلا حالت گرسنگی که در یک سگ ایجاد میشه دقیقاً همزمان باشه با اون صدای سوت دقت کنید نه اومدن اون سگ مهم اون استیت درونی اون استیت درونی که باعث میشه اون سگ بیاد مثلا از شما و غذا بخواد باید اون زمانبندیش درست باشه نکته دیگه اینه که واقعاً باید شدید باشه اگه میخواد سریعترین شرطی سازی ست بشه و ایجاد بشه باید اون استیت درونیه مثلا اون گرسنگی که در سگ ایجاد شده باید شدید باشه که به سرعت ذهن اون سگ ارتباط بین اون سوته و اون غذا خوردن و حس سیراب شدن یا حس برطرف شدن گرسنگی باید اینا کاملا رخ بده تا این وضعیت در واقع ایجاد بشه و اینکه تکرار هم یه پارامتر مهم میتونه باشه بعضی وقات ممکن شما اونقدر استیت شدیدی رو شارژسازی کنید که حتی نیاز به تکرار هم نباشه مثل خیلی از فوبیا ها که با یک بار ترس شدید از ارتفاع مثلا تا ابد دیگه اون فرد از ارتفاع میترسه و این نکاتیه که توی شرطی سازی مهمه از هر مهمتر اینه که از همین الان شروع کنید و تمرین عملی کنید تمرین مستقیم کنید تا اینکه واقعا بهش مسلط شید و عملاً بهش تسلط پیدا کنید.